منم رونا ببخشید من نمیخواستم موضوع شما بشم من با مادرتون صحبت کردم همه حرفا من به آرش زدم من برای چیز دیگه اومدم بیشتون خانم جوا مردی آرش هم وقت خیلی به هم ریخته است شما متوجه نشدیم نه صبح میره آخر شب میاد میگه برای خواهرش مشکلی پیش اومده من بهش گفتم هر کمکی هست انجام میدم ولی اصلا پیداش نیست امروز کسا نایمد دفتر دیروز و پیروز یه سر زد آشفته بود سودم رفت صبح گفت من میرم دفتر نه کار دارم نیمت من. من نگرانشم فکر می کنم یه چیز مهمی شده که داره از من پنهون میکنه. اومدم پیش شما اگر اتفاقی افتاده بدونم والا؟ تو محل کار خواهرش یه اتفاقاتی افتاده که رفت مستقیمی هم به شادی نداره آراشم دلگیری این ماجران نیست شاید چیز دیگهی باشه ببخشید این حرفا میزنم ممکنه همسر سابق شما براش درد سری درست کرده باشه که نخواد بگه نه من از اون شکایت کردم توی کلانتری هم تعهد داده که کاری به کار ما نداشته باشه و تازه اگرم این باشین چیزی نیست که انقدر آرش رو بریزه به هم من فکر میکنم موضوع خیلی جدی تر از همسر سابق من و این چیز با باشه الله شباون من ازش میپرسم ببینم چی شد بازم ببخشید مزاحمتون شدم. خیلی دوست داشتم ببینمتون. آرش خیلی شما رو دوست داره. میدونم از من خوشتون نمیاد. ولی امیدوارم یه روزی حستون اسفط به من تغییر کنه. خدافظ. مطمئن بودم. من میگم کار دارم، برای چی منو میکشون اینجا؟ خب منم کارت دارم دیگه. چی میخواهید جون من؟ خودت بهتر میدونی. من با شما چه سرمیداری دارم که اون مزخرفاتو میگه؟ ها؟ بوی کباب به دماغت خورده داره؟ به میاره اش خواهم، ما با این حرفا کاری ندارم. فقط میدونم موقع نوشتن اون برنامه کنار بودم همین. کنارم بودی؟ چیکار کردی؟ چیکار کردم؟ گفتم که من با این چیزا کاری ندارم، فقط سهممو میخوام. واس همینم هم قانونی اقدام کردم. سهممو میخوام. یا کردی بریش شکایت کنی به جایی میرسی آره وقتی رسیدم میبین ببین هیچ چی دستتو نمیگیره علا که دلتو خوش نکن من دلم به حالت سوخ گفتم یه پولی بهت بدیم باشه پس بشین ببین من چی کار میتونی آره هیچ میکنم. غلطی نمیتونی بکنی برگه هزاریه که رسید دستتو موقع میفهمی موقع میفهمی میروم هیچکاریم نیا نکنیم. باید دکتر پیش آمده است. نه من نگران نیستم. من نگران نیستم. باید دکتر پیش من نگران نیستم. نه من نگران نیستم. نه من نگران نیستم. نه من نگران نیستم. نه من نگران نیستم. نه من سلام. استانشو پنج نفر. سه. سه. سه. سه. سه. سه. سه. سه. نگران آرشم تو هم متوجه حالت شدی؟ آره به نظر من میکن به هم ریخته. هست بنام که اومده بود همینا رو گفت نگران تر شدم اصلا توی این یه هفته یه دفعه نایمده شام بخوره یه دقیقه نایمده پیش ما بشینه همش تو پیجه و پریشونه یا به خاطر کارشه یا رونا اگه بود رونا میگفت هست نرسیده اومدی تو اتاقت شام موازره گرسنه نیستم دفتر چه خبر؟ خوبه کارا خوب پیش میره؟ آره حسابی مشغولین نه؟ هله هر روز میری دفتر؟ چطور؟ هیچی میخوام ببینم کارت در چه وضعیه؟ گفتم که کارم خوبه هر روزم میرم دفتر. امروز که نرفتی؟ چرا میگی رفتم؟ امروز بیرون کار داشتم، نرفتم این روزم نرفتی؟ شما کجا میدونی؟ زنگ زدین دفتر. من شماره دفتر دارم رونا بهتون زنگ زده؟ خودش اومده بود اینجا اومد اینجا؟ برای چی؟ نگرانت بود نگرانت چی بود؟ اراش تو مشکلی داری؟ نه. میگفت نمیری دفتر. ماجرای شادی رو میدونست. ماجرای شادی رو برای چی برای اون گفتی؟ نامزدمه فکر کردم باید بدونه. بهتر نبود موضوع بین خودمون میموند؟ اراش تو برای چی اینقدر به هم ریخته ای که رونا نگرانت شده؟ فقط یه سری کار دارم، بودو بودو دارم همین. آقا پشمان هستن حالش خوب نیست از کجا فهمیدی زنم به نامزدش علی آقا پشمانو بپرسم بگو براش دعا کنید خدا به جونش رحم کنه رامینم بیاد سلام علیکم سلام خیلی خوش اومدی واقعا با تلفنات خوشحالم کرد. هم واسه خوشحال شدن زنی نزدن <تصفح> نظره لطفته بفرمی تو من خودم قبول دارم رامین شوار خوبی برای رونا نبودم ولی منان تو رفقهای خوبی بودی من که فقط عذیتات یادم نه <تصفيق> شایی تازه دمه نفهم <تصفيق> چه خونه زندگی برای خود ساختی؟ ممنون بابام خدا بیامورس که فوت کرد یه مقدر زمین داشت رو زدم به کار چه کاری؟ واردات تو برای چی میخوایید توی شرکت ما سرمایه بذاری؟ بهت گفتم یه مقدار پول دارم میخوام یه جایی حسابی سرمایه گذاری کنم از کجا معلوم که کار ما حسابی باشه؟ از نظر من جایی که تورونا باشید حسابیه ببین این کامیار رونا الان نامزد داره. بابا هم با ازدواج اونها مخالف نیست. اگه فکر میکنی با سرمایه گذاری میتونی به رونا نزدیک بشی دل اشتباه میکنی. چون من اجازه نمیدم که وارد شرکت بشه. خب؟ من یه شرط دارم. چه شرطی؟ تو پول میذاری ولی هیچ وقت دفتر نمیه. من به عنوان شریک خارج از دفتر با قرار میذارم بهت گذارش کار میدم. هم؟ باشه مشکلی نیست حرف فقط کافی نیست تا همون چیزی که گفتم جوی این قرارداد صفت و سخت نوشتم باریکی تو طبق این قرارداد تو فقط سرمایه گذاری توی سود و ضررم شریکی تا موقعی که کار به نتیجه و درمتزایی برس کجا رو باید امساک کنم نمیخونیش؟ نه خونده قبول دارم از قبل نجا رمزه کردم اون خدمت شما پیش ما ساعت نشه do <laughs> چود آراش مادر چه رنگه پریشونی چطه بذار چطه خوردم زمین شادی به من دروغ نگو راستشو بگو ببینم چی شده درست آقا پجما خورده تو صورت خلت کردی دست خوهرم امادن کردی خوهرم خیالت کردی سختهای خوهرم تو میذارمش رو می نزامش نده تو آدم شد مریض حالیم خوش نیست نخواب راحتی دارم نمای لمبه بیداری درون ما دفا و تان آز تو مبتدا به درمانی و من دوچار بیماری کنار تخت میخوا برم مگر هوا که بند آمد نفس کشیدنت باشم رو. میشوی هر شب و صبح میشوی هر روز تو خواب راحتی داری. داری خیلی نگران آراشم دیشب تو خوبی فریادی زم کجا سنو چه نبیر صابونه بخوره نه شام میخوره نه صبحونه میخوره نمیدونم چی شده شاید تو کارش مشکلی پیش آمده نه کارش نیست این کارش بود و نمی آمد اینجا از من بپرسه آرش چشه صدا سادا سادا بود آرش دیشن خوابه چی دیدی؟ نمی‌خواه بگی؟ یادم نیست حسه عرق شده بودی امروز بوز هفته همین بریم شرکت یه اوتوبوس گرفتن همه من سر مزار از وقایی دیگه نخواستند؟ در دیروز رفتم با سراغ سامان رو گرفتم دیگه زنگ نزده میدونه پیمان مرده میگه هنوز باش در تماسی دو سا دفع زنگ زد گفته بودم دیگه جوابشو نده شادی نگفتم میخواست حالا آقا پجمانو بپرسه به خدا کاش پلیس تلفون شادی رو کنترل کنه سامانو بگیرن شادی که باشون همکاری نمیکنه الان انها گردنشه گردنش شادی میفهمی؟ کارو نبوده اگه بگیرنشو رو نتونه ثابت کنه میدونین حکمشیه قصاص چه میزنی؟ تو یه چیزی ثابت نشه که کسی رو قصاص نمیکنن که من بگم کاری به سامان نداشته باشه. مم ممکنه بی باشه وا خودش گفته از پدرش کینه داشته بعدش هم این همه نقشه کشیده چطور ممکنه باشه دلیل نمیشه مادر من برای شادی باید خودشو بندازه به وسط تازه رقم این رفته گفته ممکنه درد سرشو براشه تلفناشو جواب نده ببین چند بار بهت گفتم شادی صابونه نخوردی کار دارم حسین جان رامین اما کرم هم میاریم بیاین دیگه با هم صابونه بخوریم بابا سلام صبح خیلی سلام سلام بادر چرا نیمی این صابونه بخوریم رامی صبح خیل صبح بخیر بابا صبح خیل شایات می اخش کرده خوبی حسین بابا چی شدید حسین رامی با درمیش گرد برمیش گرد برمیش گرد بیده بار چمس را بیا بابا یه لحظه چه شده باز خو زمزم خدا رو بخیر بخیل بله به خیر گذاشت ولی بله رامی من صد بار به تو گفتم بابای تو به تو احتیاج داره ببین نتیجه رو نتیجه رفتاروی تو ببین کی رو بیاره جای من رامی تو کیو گول میزنی خیلی کی جای تو رو بر بابای تو میگیره واقعا برمتصل می‌گم نکونی وقت بهرامی رفت اونجا دعواشون شده گرفته زادتش. بهرام می‌موزه در برده برای چی باید بره درو کنه؟ چه مثلا رفت اونجا پوز بده یه حرفی بزنه که به‌چزونه یا حالا هر چی پشمانم قاتی کرده و باهم درگیر شد. آره گوی بهرامینم خواسته دیگه اگه بهش شک داشتن می‌گرش می‌ذاشتن. همین اگه تو اون روز سرشاخه نشوده بله بله بله من اشتباه کردم. ببین الان دیگه هیچ جا مر تو امن نیست. باید فرار کنی. چی می شه؟ دیگه ای داری؟ کاری نکردم فرار کنم. بله کاری نکردی ولی اگه بگیرنت معلومه چی سرت بیاد. تا قاتل پیداشه تو زندون میپوسی بدبخت. بابا فایده نداره هر جو باشم میگردم پیدا و میکنم باید و جرمم سنگینتر میشه. کار میخوای بکنی پس. ببین تو اون دفعه به حرف من گوش نکردی. شد اون چیزی که نباید میشد. این دفعه بیا به حرف من گوش کن تو فرار کن. قاتل که پیدا شد اون وقت برگرد یعنی به خاطر من نیجو شده کی بابا رو نگم همیشه مشکل قند و فشار داشته آره خب ولی اجرخ به این حال نیفتاده بود. بله خب رفتن تو برای سنگین بوده رونا نظر تو تا اینجا سرمان شروع باشد کار مفید من در روز چند ساعت اینجا دو دوده. چهار پنج ساعت خب چطور؟ هم. دارم فکر میکنم بعضی روزا دو سه ساعت برم کارخونه با, با کمک کنم تا یک هم حالش خوب شه میتونی؟ من زمین که خیلی ممکنه فشار بیاد. خب اگه نتونم تو که هستی قبلا قبلا هم شرکت بودی ها؟ سلام. آینه نظری هستن؟ بله، یه لحظه آقای نظری. با شما کار دارم. الان بیارم. سلام. تو اینجا چیکار می‌کنی؟ مدام ببینم کارا چطور پیش میره. مگه ما با هم قرار نذاشتیم تو اینجا نیای؟ آره؟ ولی کم پولی وسط نذاشتم. میخوام از نزدیک در جریانی کار قرار بگیرم، همین. سلام. سر نامزد رونا سور اسم داره رونا از اومدن تو اینجا خیلی عذیت میشه میشه من برای کار میام اینجا کار؟ تو از این کار سر در میاری؟ نه ولی بیزینس بیزینس حرف مفت نزن با بیزینس بیزینس هست کامیا اگه بخوای بیا یا بری اینجا حاشوب بپکنی هر طور شده پول تو جور میکنم و رضا میکنم فهمیدی؟ الان برو که خارم از این بنابرا خیلی مامون از خانم یا آقای نظری هستم بله هستم ولی بل باید باشین عمل کن شما داخل منتظر باشه خانم ماده اعلام کنم که من رسما شکایت کردم من ازتون خواهش کردم که این کارو نکنی الان هم دیر نشده شکایتتونو پس بگیری یه شرط پس میگیرم ده درصد زود میخوام من که نمیتونم این شرط شما رو قبول کنم شما قبول نمی کنی یارش فرق نمیکنه. درخواست شما معقول نیست واسه چی شکایت هم پس بگیرم آدم روی ادعا که کارو به شکایت نمیکشنه ادعا نیست دادگاه تحکیب رو روشن میکن. شما در هر حدی که توی این پروژه بودین همونقدر رو بگید و قایل رو ختم من فکر میکردم که شما ها قلتر از آرش باشین ولی مثل که با شما هم به نتیجه نمیرسن به آرش بگی جوا تلفونای منو بده وگر دم مجبورم در خونشون. نوسام هم اونجا زندگی میکنه دیگه نه؟ کجاست دارم؟ سلام. سلام من این سویچ هم اینجا است نذاشتم؟ کجا گذاشتم؟ تو این گلخونه داشتیم صحبت می‌کردیم با آقا را. آقای رامین فکر یه لحظه جس. میدونم ماش ما چیکار خانم شاکی. آقای نظری، به نظرم هر صدام هیچ فایده‌ای نداره. چون من هرچی کی میگم شما حرف خودتون رو می‌زنید. منتظر حکم دادگاه باشید. ببخشید. خانم شاکی. این کی بود؟ تو اگه نرفته باید؟ تو ایچه اما جا بذاشتم میگم این کی بود؟ آقا من باید دونم اینجا چه خبریست؟ ادعا میکنه که تو نوشتن روشن برمومه بوده. زم خود. چکایت کرده؟ من که نمیزارم این اتفاق بیفته. اینجا باید یه مدیریت درست حسابی داشته باشه بعد یه تقسیم وظایف کشه اصلا اینو بسپارش به من تو چیکار مطورم آقایم سرمایه ما هده کلی پول گذاشتم من اینجا شماره رو بده به من حلش میکنم میگم شماره رو بده به من حلش میکنم باشه تو گوشی ندارم دردارم تو باشه امیش این سویشتون آخ آخه دست دادن. بایش مطور مرور نبود پشت اینجا بزدار پروتر از این حرف هست فیلم که دختره رو به سورید به مرمون چه نیدی زنگ زن آرش شفید ممکن این من نتونم اینجا باشم کجام خبر. خبرم؟ خبرم کارکونه ببینم چه خبره؟ اتفاق فت شده آ سالاله این روزا متوجه حالت آرش شدیم این چند وقته خیلی به همریخت است غذا نمیخوره نمیخوابه لاغر شده دور چش ماش گدف من میدونم که دوست صمیمی غیر از شما نداره برای همین مادم ببینم شما خبر داریم چی شده خب شما که خودتون میدونه بارش خیلی طول داره دفترم نمیره به من میگه میرم ولی میدونم نمیره شبا دیر میاد کنه یا شام خورده یا سیره رونام نگرانش شد ماده بود صراقه من ببینه چی شده چش. من باش حرف اون زنم ازش میگرسم یعنی به شما چیزی نگفته؟ صالح جان طور خدا اگه چیزی هست به من بگو من مادرشم باید بدونم نمیدونم ولی چشم ازش بکرسم اگه چیزی بگو از چند زر زر جلو چشم آب میشه طور خودو ببین این چه اتفاقی افتاده حتما بفرمایی چه های چون روح شادروان تازه گذشته با هندس شریفی فاتمت سلوان سلامات. سلوان آمد باره آمد آمد آمد رنج لوت کردین تشریفا بردین قرم فرمودین در خدمت تون هستیم وسیله یاوزا ها باماد هست بفهمد قرم رنجه فهمد بفهمد بفهمد بفهمد رفعت خد يوزر رفعت ها خطوه ها خطوه قدها قاعد يضرب نه می نه؟ آ. بیچاره 10 بار امروز زنگ سلام بوده بله. نمی‌دونم چی بگم. هر چی بگم چیزی از این درد و مصیبت کم نمیشه اوکی. با دکترم الان نمیتونه حرف بزنه. حالش که بهتر شد میگم بهت زنگ بزنه. آره. موسیقی آقای شریفی به اتفاق دردناکی بود منو تو غم خودتون شریک دیم سلامت باشید فقط یک خواهش ازتون دارم کارگرها رو بیکار نکنید بیکاری زندگیشون رو از هم میپاشه بعدا راجع تصمیم میگیریم. بعدا راجع فکر میکنم گفتت شما بیا اینجا. با دوز و کلک موی سرارو بالا کشیدی. حالا اومدی واسه عرض تسلیحات. آقا زن وقتی این حرفا نیست. این مو ها چی میگی؟ خجالت میکش خجالت تو بعد بکشید. دستاشو کردی سینه خال. حالا اومدی اینجا که چی باشه؟ حرفو بی خود نزن. من برنده شدم همه چیم قانونی بود. همه میدونن سامان آدم تو بوده. بس کنی سر قاب من از این حرفا نزنید. رفتی خونه ما از وقتی سرکل این دختره بنفشه پیدا شده ریختی به هم پول مادیتون چی شد حل شو تو چی می‌خوای بدون رونا وقتی میگی که با ما بودی که این کارو باشی می‌کردی خیلی به هم تو رونا خودش بعد تصمیم بگیره که می‌خواد پای تو بایسته این دیگره. پول برای مسائل شخصی نیست برای شرکته بهم اختیار دادن که اگه جای تو را بلد باشم نگم خیلی برام وقتش دلیلی ندارم که ثابت کنم ویگونا هم چه فرقی با الان داره حکم فاجل اعدامه تو یاری کی هشام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 ماه از را رسید روی راب قل نشاز دکمه های قلب من دون تنشول شدم گفتم این یه موجه است خیره شد به آسمان همه ستاره ها دون دون گل شدن مهربونی ایاش نازنینی ایاش آخریم تیک جهایین جور آخریم جورچینی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 من چه میدونستم اومد زود بره چه قروبی داشتن خنده های آخرش آقای خدافزی یه از قلبم مثل پروانه نشست روی سنجاق سرش مهربونی ای ایش نازنینی ای ایش آخرین تکیه جور چینی، ای ایش